هممیهنانم خواهرانم برادرانم مادرانم پدرانم و فرزندانم مشروطیت ایران یکی از شکلهایی بود که سرکشی ملت ایران از نو چهره به خود گرفت از نو شکلی تازه پیدا کرد سرکشی همیشه یک آتش است سرکشی همیشه یک فوران یک انفجار و ترکیدن است این آتش این آتش ملت بیانه نیرومندی بیان ناگنجایی، بیان ناگنجیدنی بودن در پوست ها در شکلها، در صورت ها در اندیشه های حاکم در ساختار های حاکم در مذهب حاکم در مخ های حاکم بود ولو اینی که این عبارتها را نمی توانست سرکشی همیشه هم طور است سرکشی نمیتواند آخرین خواست خودش را بگوید. این سرکشی و آتشبانی ملت ایران در سرکشی کاوه آهنگر در مقابل زحاک عبارت بندی شده است زحاک اصل آزار جان و زندگی در اینگیتیس زهاک اصل آزار خرد جوان است به همین علت در شاهنامه زهاک مغزهای جوانان یعنی اندیشندگان نوآفرین را میخورد که در شاهنامه گفته شده است این پوکش یک حقیقت است زخاق شاه نبود سلطان نبود سلطان به معنای سیاسی به معنای یک حاکم بلکه همون میتراس یا خدا بود به همین علت این نام را پوشندن ولی در این که هزار سال حکومت می کند می توان تشخیص داد که زحاک یک فرد حاکم نبود است. این زحاک چی آورده بود؟ این خدا ایده میساق و عهد را بر پاگی قربانی خونی به جهان آورده بود خیلی مهم است این زهاک ایده سراندیشهٔ میثاق و عهد را بر پایه قربانی خونی به جهان آورده بود این چرا زهاک را تبدیل به شاه و سلطان کردند علت دارد تا ایرانیان فراموش کنند که روزگاری با خدایی به جنگ رفتند نه تنها با شاه نه, پت... نه تنها با یک حاکم و مثبت نه خدایی را از خدایی انداختند این دلیری میخواد گستاخی میخواد ملت در مقابل یک خدا قد علم میکند این دلیری و گستاخی ملت ایران بویژه گستاخی و دلیری و شهامت زنان ایران بوده است که تو مار قدرت خدایی را که هزار سال بر ایران پیش از تاریخ حکومت کرده است در هم پیچیدن. ملت ایران چنین مللتی است مو زردشتی چون آموزه زردشت به درد سیاست و حکومت رانی است آموزه زردوش آشتی طلب بوده است آش... آموزه زردوش بر پای قداست جان بنا شده بوده است بر اصل ضد خشم را شده بوده است. این به درد این آخوندهای های زردشتی نمی است این از که آمدند آموزه زردشت را برای جنگ و سیاست و جهاد آمده بسازند این از که نام خدای مهر که نام سیمر بود است، نام هوما بود است به این خدا دادند یعنی بزرگترین جعل تاریخی را کردند دروغ فاجعه آمیزی را در هایشون در همین اوستای موجود و در همه آثارشون در همه این متون پهلوی که امروزه به عنوان علمی بودن مدار تحقیقات قرار گرفته است قرار دادن یک دروغ فاجعه آمیز خدایی را که خدای مهر بوده است به جایش را خدای جهاد و خدای خونخاری گذاشتن خدای جنگ گذاشتن فراموش نشود ارث این خدا همین زهاک سپس به یهوه و پدر آسمانی و الله رسیده است نگویید که اینا از عربستان آمده است نه از همین زهاک خود ما به اینا به عرص رسیده است ما یک جنگ هزاران ساله به خدایان داریم. داستان انداختن خمینی نیست. داستان جنگ هزارها با خدایان قربانی خونی. با خدایانی است که میثاق و عهد یعنی ایمان را بر پای قربانی خونی میگذارند. داستان ابراهیم و قربانی اسحاق یا اسماعیل درست چیزی جز بناگذاشتن میساق و عهد که ایمان باشد بر پر با پای قربانی خونی نیست تمام قرآن و تورات و انجیل همش بر پای همه قربانی خونی نهاده شده است ورم که بذک بکنه این بذک کاری ها این کرشماهای هوش نیست که یک دیگ میکنه. اصلا شما میماند که است. این اندیشی چه میگوید؟ این ذهق چی میگفت؟ میگفت که جان و خرد انسانی تا آنجا قابل احترام است که زیر امر یهوه و پدر آسمانی و الله برود. مهر تو عشق تو به عزیز عزیزترین هست که در این داستان تورات و انجیل و قرآن فرزندت اسحاق یا اسماعیل است این مهر تو نباید به تو فرمان بدهد بلکه این محدود به امر خداست خدا گفت یکی را دوست بدار باید دوست بداریم یهوه گفت الله گفت در آسمان یکی رو که گفت دوست نباید بداری به آن کینه بورزی باید به با آن کینه بورزی یعنی چی یعنی اصالت مهر را از انسان گرفت قداست فراموش نشود که قداست همیشه منحسر است یه چیز است که مقدس است این مسئله نیست که ما قداست ادایی بکنیم مسئله این است که قداست به چی تعلق میگیرد ط این نیست که در ضد قداست باشیم نه این قداست زدایی یک حرف بیازش است است بلکه جابجاب جاب می شود در این ادیان امر یهوبه امر پدر آسمانی امر الله مقدس است. پس وقتی خدا گفت بکش الله گفت بکش باید بکش یعنی این مقدس است جان قداستش را از دست میده خرد قداستش را از دست میده از این بپر امر الله مقدس است. وقتی که گفت کینه بورد به این به آن باید کینه بورد وقتی گفت بترسان وحشت بینگیست من به تو میگویم باید بکنی وقتی گفت اون برخیز و ارهاب کن تهدید کن وحشت بینداز باید بکنی وقتی گفت پسرت را رو، برادرت را خواهرت را بکش باید بکشی وقتی گفت خودت را باید بکشی باید قربانی کنی وقتی گفت الله میگوید اینجور بیانش؟ باید اینجور بیا یعنی خرد خودت رو قربانی کن این است که اولین چیزی را که الله خلق میکنه است تا عبادتش کنه تا عبدش باشه عقل است اول ما خلق است عقل اولین چیز خلق میکنه تا عقل الله را عبادت کنه تو عبد خدا باشه اولین عبد عقل است عقل باید عبد الله باشه این عبد خودش را برای معبودش قربانی میکنه. اقل عقل اسلامی یعنی یک متفکر اسلامی یعنی یک روشن فکر اسلامی صبح تا شام شبام تا شام باید در هر چیزی که می اندیشد خود را گام به گام قربانی کند با ویلا اگر سفارش این آقایان که عقل را اولویت در اسلام میدهند تحقق پذیرد. چون چیزی از این جز این از آب در نمیآید تفکر اسلامی یعنی چی؟ یعنی خود کوچی عقل خود آزاری عقل خود زنی عقل در هر گامی در اندیشیدن نه که صبح کسی یک چیزی را که میاندیشد طوری بیاندیشد که آیه های قرآن به او دستور داده است نه این باید گام به گام هر اندیشهی میاندیشد سر اندیشه را کج بکنه طبق فرمان و حکم اللهش بکنه در برابر این قبیل خدایان و در مقابل اهورا که موبدان زردشتی ساختم و میتراس را زحاک را برابر با اهورا مزدا ساختم فرهنگ ایران فرهنگ ایران غیر از دین و زردشتی یا الهیات و زردشتی فرهنگ ایران جان را و خردی که از این جان میترابد جان زندگیست خردی که از جان میترابد برای زیستن است برای زندگی هست جان را و خردی را که از این جان میترابد مقدس میداند مقدس بودن انحساریست فقط خرد فقط جان انسان را و خردی که از این جان از زندگی تا می مقدس میداند نه امر الله را نه قرآن را نه تورات را نه احکام یک کتاب مقدس را نه امر این نبی و اون رسول را نه اینها رو مقدس نهمیداند افراد براش مقدس نیستن نه جان مقدس است جان هر فردی ولو ملحد باشد ولو مشرک باشد ولو کافر باشه هر دینی میخواد داشته باشد اون مهم نیست جان دارد و این مقدس است میازار جان این میازات موری این از اینجا می آید این اندیشه قداست از کجا می آید؟ این اندیشی قداست از آنجا می آید که بن آفریننده جان که بهمن یا هومن باشد خودش را مانند خوشی در دیتی افشانده است و بونه هر انسانی این بهمن یا هومن این بهمن یا هومن به کلی با تشویری که الهیات زردوشتی در کتاب هاشان میدهند فرق دارد و متضاده با آن است به بهمن حقامن میگفت حقامنشیان زردوشتی نبودن هخامنشیان به بهمن حقامن میگفت به همین علت. خودشان را حاخامرشین می‌دهند. این حخمن یا هومن یا عرکمن یا اندیمن اینها اسمای گوناگون این بهمن است اکومان، یعنی خداوند پرسش شد، درست مبادنا از دستی بود بر این این چهره بهمن هم بود. این حخمن یا هومن که اصل آبستنی یعنی نوآفرینی همیشگی بود اصل میان هم بود خیلی مهم است اصل نوآفرینی در میان بود اصل میان هم بود یعنی چی یعنی بهمن هر دو چیزی را به هم اتصال میداد هر دو کسی را به هم اتصال میداد نه تنها در میان خود او بود تمام وجود او را با هم متصل میسا بلکه میان من تو هم بود یعنی اصل اجتماعی بود یعنی میان همه من و تو ها بود همه چیز همه انسان ها را به هم اتصال میداد به همه انسان ها را نه همه پارس ها را یا آذری ها را یا بلوچ ها را یا ترکمن ها را نه همه را به هم اتصال می دهن. فرهنگ ایران فرهنگ ناسیونالیستی و قومی و میلی فرهنگی است که همه جهان را می با به هم پیوند بدهد این بود که به این به این می یا یا اسنگ می گفتن یا سنگ یا آسان می گفتن سنگ معنای امروز را ندارد سنگ معنای اتصال دو چیزا دو کس را با هم دارد است که یکی از اسمش آسان بود همین واژه رفته از عربی معربش حسن شده بونه انسان این آسان خرد بود بهمه آسان خرد یعنی یعنی خرد پیوندهندهی که در بونه انسان مینوی خرد خرد سنتزی که خردی که مهر می همه گونه پیوندها را مهر میگفتند ایران عشق به زن مهر نبود عشق به این چیز و این چیز مهر نبود همه ی نوع عشقها را مهر می گفتن. فرهنگ ایران این فرق داشته عشق افلاتونی و اینا نبود عشق به زن عشق به فردند اشک همه اینها مهد بود اشک اجتماعی یک بود این بود که سیاست با با مهر سر کار با بهمن سر و کار داشت از این رو این بهمن این اصل اول بونه دنیا رو مهدیا که اصل انسان بود مهدیا مردم گیا همین اصل خلقت همین چیزی بود که سنگ بود. این به هم پیوند میداد. اصل کرد کوردها به آن حسن بگی میگن. بگی یعنی باغ یعنی خدا باغ. حسن همون آسان است. یعنی باغ حسن باغ. یعنی مهرافری. باغ مهرافری. باغس پیوند دهنده. یعنی اصل پیوند دهنده که چی باشد این بود که نام کاوه آهنگر از اینجا پیدا شد این آهنگر این کاوه اینها نه کاوهی بود که حرفش آهنگری باشد و جزء حزب کمونیست و کارگری باشد این نوع تفسیرات و تعبیرات حزبی و سیاسی اینها مد دورهای بدیست غلط نیست ولی درست هم نیست این خرد پیوند این خرد پیوند که اصل زده خشم بود ببینید در همین جا همه کل اصول سیاست معهن شده است یعنی کل فرهنگ سیاسی ایران معهن شده است این خرد پیوند اصل زده خشم بود یعنی چی یعنی زد قهر زد خشونت زد زدارکامگی زد کشتن زد جهاد دینی و عقیدتی و حزبی و سیاسی بود کابه کابه یعنی چی یک شخصی نبود که برخیزد این همه ملت بود که برخواستن کابه چرا بهش کابه گفتن کابه در عوستانیست اصلاً این رو بعدش در دوره سازانه ها ساخته کاب و کاب و کعبه در عربی یعنی بند نی بند نی در فرهنگ ایران نماد پیوند دو چیز در عشق و بود همون معنای سنگ رو داشت که اصل نو و نو میشد دو چیز که به هم می به هم می اهد سنتز پیدا میکنن این اصل آفریننده میشون این که این بندنه همون معنای سنگ اتنگ و آسنه داره این بود که از بهمن یعنی چی؟ از این اصل زاینده و پیونده از این خرد پیوندهنده ارتا پیدا میشه. این ارتا اسم دیگرش هوما یا سیمور و بهیشت آر تا فرورد اینا اسماي مختلف اشی اینا اسمای مختلف سیمرخ هست این بندنه ای را در کردی قف مینمان که همون قاف باشد. ما همه کوه قاف شنیدیم این همان است قاپ کاپ کعبه اینا واجا است که بعدا از هم فاصله گرفتن و ما اصلا مخصوصا پاره کردم که ما پیوند اینها رو با فرهنگ گذشته و نتوانیم تشخیص بدیم ارتا اصل داد بود این ارتایی که از بهمن پیدا می شود. از خرد پیدا می اصل داد بود یعنی چی؟ یعنی اصل حق و ادالت و قانون از بون خرد انسانی پیدا میشد در هر انسانی این بونه بهمنی هست که از این بونه بهمنی سیمرغ از قاف خودش برمی‌خیزه حالا بهمن هم که اصل میان هست اصل اصل سنتز هست و اصل ضد خشم هست که همه اینها رو دقیق که باشید میبینید یک معنا دارم در نادیدنی و ناگرفتنی است در میان ا در میان شما هست در میان من هست در میان ماها هست پس بنابراین نادیدنی و ناگرفتنی ولی این نادیدنی و ناگرفتنی درست ا... کنکریت است ای... ایجاد اجتماع میکنه. ایجاد سازمانهای اجتماعی را میکنه. این بهمن ایجاد قانون که چونکه پیوندها را ایجاد اندیشه میکنه. این بهمن در هیچ شکلی و صورتی نمی گنجد. شک به خودش می گیرد. صورت اندیش است ولی در هیچ صورتی نمی ماند. در هیچ صورتی ثابت نمی ماند. پس ببینید چه اندیشه ژرفی اینها کردن پس هرچه قانون و ادارت و قانون نامیده می شود، پس از مدت کوتاهی سفت و ثابت و متحجر و جامد و یخبندان می شود. پس دیگر بهمنی حقیقتی در این قانون و عدالت و حق نیست این چیزی که ما دیروز و پریدوز قانون و عدالت و حق بفته دیگر خبری از حقیقت در نیست خبری از جان اون جان جان دیگر در اینها نیست این حالا شما بیاید اینها را مقدس کن باید شریعت هست نه اون بهمن از میان اینها ها گریخت و رمید و رفت این بود که نام دیگر همین ارتا چی بود؟ فرانک بود فرانک فرانک بود فرانک فرانک خوانده شده. فرانک معنیش معنی چی معنای سرکشی و سرپیچی و سرفرازی داره. این ارتا همون خدایی که داد و قانون و ادالت و می خدای سرکشی هم است. اصل سرکشی در هر انسانه. هست نه اینکه خدای سرکشی فراز آسمان ها نه این اصل سرکشی اصلی است که از خرد انسان میتراود و در هر انسان هست تیمور از خاکستر فراموشی برمیخیزد و و درفش کابیان را که درفش گش نامیده میشد بر ضد خدایی خدایی نه شاهی نه آخوندی که معمور اون خدا نه بر ضد خدایی که خرد و جان را می آذارد خرد مقدس ساخته از خرد و جان رو قربانی خونی را دستور داده است گفته از میثاق من با تو برپایه قربانی تو قربانی خرد تو، قربانی جان تو برای منس بر ضد این خدا برمیخیزد و این پرچم را برمیاخزد پرچم رو بر ضد یک مستبد امروز برنمیانگیزد بر ضد بر یک اصل برمیانگیزد خرد بهمنی ملت که در زیر خروارها خاکستر مذهب و آموزش و تاریخ و آموزه های شده مذهبی و سیاسی و تحریف شده در تاریخ دفن گردیدند تبدیل به سمندر می شود که از خاکسترش پرواز می کند از قاف زمیرها از قاف دلها از قاف خردها باز می آید. این خرد بهمنی در فرهنگ ایران این خرد بر... بهمنی در فرهنگ ایران دجیست بلعید. که هیچ قدرتی چه حکومت چه دینی چه مذهبی چه سیاسی چه ایدولوژیکی نمیتواند با زور و قهر و خشونت با تهدید و جهاد و کشتار و ترور اون را بگو شاید. هیچ دینی نمیتواند این بهمن را دین خوب کنه این اصل زاینده بینشست او را نمی نمیتواند عادت بدهد معنوش بکند متحجر بکند هیچ قدرتی چه حکومتی چه دینی نمی نمیتواند با تهدید و جهاد و با آموزش بر این بهمن فیروز شود. بر این ارک، ارک. بر این عرکی که بهمن برشد اصل همه اصل. این خرد بهمنی ایرانی در مشروعیت با آغاز مشروطیت شروع به آتشفشانی کرد ولی این آتش آتشفشانی خاموش نخواهد شد این آتش آتشفشانی را نمیتوان با هیچ قدرتی با هیچ قداستی با هیچ امری با صدها هزار آخوند خاموش کرد و دهانه اش را بست سرکشی ملت ایران بر پایه‌ی خرد بهمنیش پی در پی زبانه میکشد و سیمرغ سوخته شده سیمرغی که هزاران بار سوخته شده هزاران بار خاکستر شد ولی اصل سرکیشی از خرد درونی انسان در مقابل حقوق و ادالات ها و قوانینی است که صداهاست ضد حقیقت ضد عدالت ضد قانون شدن میخیزد. این سیمرغ دوباره در ما داییده میشه